به نام خدای مهربان سلام افسانه ها روایت های ساده و ایستایی نیستند بویای مداوم و حرکت در افسانه ها چهره زنده و فعال بهونها میده آنچنان که گویی افسانه ها نه حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبله بلکه روایت زندگی روزمره ماست این هفته افسانه مرد خیاط و بزخالی دروغگو رو براتون نقل میکنه. این افسانه برگرفته از کتاب افسانه هاست که فضل الله محتدی اون رو گردآوری کرده امیدوارم این افسانه شنیدنی لحظاتی شما رو از این دنیای پرهیاهوی صنعتی دور کنه و به دنیای افسانه‌ها و خیالات ببره روزی روزگاری مرد خیاطی بود که سه پسر داشت در یکی از روزهای سال مرد خیاط به بازار رفت و ای خرید و به خونش آورد و قرار گذاشت که هر روز یکی از پسرها بزغاله رو برای چرا به صحرا ببره فردای اون روز نوبت پسر بزرگتر بود که بزغاله رو به صحرا ببره پسر صبح زود از خواب بیدار شد و تنابی به گردن بزغاله بست و اونو کشون کشون به طرف صحرا سهرا صحرا سهرا سبز بود و پر علف پسر بزغاله رو رها کرد تا هر چقدر که میتونه بزغاله بچره و بزغاله بازیگوش هم تا قرو چریدن مشغول شد پسر نگاهی به آسمون انداخت و گفت دیگه باید برگردیم، خب آقا بزی سیر شدی؟ بزغاله گفت، البته که سیر شدم، از صبح تا حالا یه بند دارم، علف میخورم، میخواستی سیر نشده باشم؟ پسر با خوشحالی و رضایت خاطر تناب بزغاله رو به دستش گرفت و به طرف خونه براه افتاد، به خونه که رسیدن، پسر بزغاله رو به تویله برد و گوشهی بست و خودش هم به داخل اتاق رفت تا استراحتی بکنه. پدرش ازش پرسید خواب پسر جان بزغاله حسابی سیر شد؟ پسر با اطمینان خاطر جواب داد آره پدر جون اونقدر سیر که حتی نمیتونی یه ساقه کوچک علفم بخوره. پدر خندید کرد و گفت میدونم میدونم میدونم که تو پسر زرنگی هستی بعد با خودش گفت بهتر سری به بوسی بزنم بلند شد و به طرف طویله رفت بزی در گوشه تبیل زانو زده بود و در حال نوشخار کردن بود با دیدن مرد خیاط از جا بلند شد و شروع کرد به بعبع کردن مرد دستی بر گرده‌ی اون کشید و گفت شنیدم امروز حسابی دلی از ازاد در درآوردی و تموم علفهای صحرا رو که یه دفعه بزی سمش رو بر زمین کوبید و گفت این چه حرفیه کدوم الف من پس چیزی نخوردم و بعد شروع کرد به بع بع مرد با اوقا تلخی پرسید یعنی چه مگه تو صحرا نرفته بودی بوزی گفت صحرا کدوم صحرا تو اون همه سنگ و کلوخ که علف پیدا نمیشه مرد با عصبانیت چوبی رو برداشت و از طویل بیرون اومد و یه راست به سراغ پسرش رفت و با عصبانیت گفت ای پسر یه حالا حالا دیگه سر منو شیره میمالی ها؟ الان نشونت میدم و بعد با چوب دستی به جون پسر بیچاره افتاد پسر که حاج و واج مونده بود با دست با گفت پدرجو پدر آخه چ... چی شده اجازه بدین چی شده؟ ولی مرد چنان عصبانی بود که اعتنایی به حرف پسر نمی کرد در حالی که خشم تو صداش گره خورده بود فریاد زد مگه من نگفتم این عیبون رو ببر سراب و سیر اچکار نگفته بودم؟ زود باش! زود باش از جلوی یه من دور شد نه من پسر دروغون نمی و بعد با عصبانیت پسر بزرگش رو از اتاق بیرون انداخت صدای بعبع بزغاره از توی طویل به گوش میرسید مرد زیر لب گفت حیفونه بیچاره اومدم اومدم و بعد به طرف طویل حرکت کرد فردای اون روز نوبت پسر دوم رسید مرد خیاط رو کرد به پسر دومش و گفت خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم تو دیگه مثل اون برادرت دروغگو و بیرم نباش و بزغاله رو تا سیر نشده به خونه بر نگردون بذار هر چی میخواد بچره فهمیدی پسر دوم سری تکون داد و گفت چش پدر مطمئن باش تا کاملا سیر نشه اونو بر نمیگردونم مرد زیر لب گفت ببینیم اون تعریف کنیم و پسر و بزغاله راهی صحرا شدن عدفهای سبز و تازه بزغاله رو به وجد آورد و تند و تند شروع کرد به پسر هم روی تکه سنگ نشست و به حرکات تند و تیز بزی چشم دوخت نزدیکی های غروب پسر رو کرد به بزی و گفت ببینم سیر شدی بزغاله سریع تکون داد و گفت البته که شدم تا به حال علفهایی به این تازگی و خشمزدگی نخورده بودم و بعد روی دو پا بلند شد و ادامه داد آآ اینقدر خوردم که فکر میکنم تا دو سه روزی نتونم چیزی بخورم پسر با خوشحالی گفت خدا رو شکر پس آماده باش که زودتر بریم خونه پسر با سرعت به راه افتاد و بزغاله رو به جلو روند قالب و پسر به خونه که رسیدن پسر فورا بزغاله رو توی طویله برد و گوشهی بست مرد خیاد با دیدن پسر دومش پرسید خب پسر تو چیکار کردی؟ بزغاله رو سیر کردی یا نه؟ پسر در حالی که رضایت و خوشحالی توی صورتش پیدا بود گفت بله پدر اون اونقدر سیر شده که به قول خودش تا چند روز دیگه نمیتونه چیزی بخوره مرد با تردید نگاهی به پسر انداخت و برای اطمینان بیشتر به داخل طویله رفت و از بزغاله پرسید خب امروز که سیر شدی بازی ها شنیدم اونقدر علف خوردی که تا چند روز دیگه بزغاله با عصبانیت کلام مرد خیات رو کرد و گفت کی هم چرفی روزته مگه به دیوار باغ علف سبز شده بود که من بخورم من با شکم گرسته رفتم شکم گرستم برگشتم. مرد از شنیدن این حرف خونش به جوش اومد و با عصبانیت چوب دستیش رو برداشت و به طرف پسرش که از خستگی گوشه خوابش مرده بود رفت و بر سرش فریاد کشید پاشو پاشو پاشو پسری بیرم هیون رو گرسته برگردوندی دروغم میگی مرد خیاط اینو گفت و با چوب دستی به جون پسر خابالود افتاد و اون از خونه بیرون انداخد. روز بعد نوبت پسر کوچکتر رسید اون هم مثل برادره دیگه صبح زود بزغاله رو به صحرا برد و بزی تا جایی که تونست علف خورد و وقتی غروب به خونه برگشتن باز هم بزغاله به دروغ به مرد خیاط گفت وای وای وای مردم مردم از و باز مرد خیاد حرفای بزغاله رو باور کرد و با چوب دستی به جون پسرش افتاد و اونو از خونه بیرون کرد و با عصبانیت گفته اصلا نمیدونم این پسرای من چه خورده حسابی با این حیوان بیچاره دارم و ما چه بر سر سه پسر مرد خیات اومد پسر بزرگتر به شهر دیگه ای رفت و توی یه دکونه مسکری شروع به کار کرد مدتی که کار کرد رو به استادش کرد و گفت استاد جان اگر اجازه بدین من از این شهر برم استاد که در این مدت از رفتار و کردار پسر راضی بود و میدید که پسر هم تمام فوت و فن کار رو یاد گرفته با رفتنش موافقت کرد و بعد یه دیگ و یه کفگیر به رسم یاد بود به اون داد و گفت اینا مال تو پسر جان اینا یه کفگیر و دیگ معمولی نیستن پسر جان خاصیت این دیگ اینه که وقتی با کفگیر به ته اون میکوبی و میگی غذا حاضر شو به هر اندازه که بخوای غذا حاضر میشه پسر با خوشحالی دیگ و کفگیر رو از استادش گرفت و دست اونو با احترام بوسید و از اونجا دور شد پسر توی راه به فکرش رسید که به سراغ پدرش بره و بعد با خودش گفت شاید پدرم دلش برای من تنگ شده اون که تقصیری نداشت همش تقصیر اون بسقاری دروغگو بود پسر چند ساعتی که راه رفت به کاروانسرایی رسید کاروانسرا پر بود از مسافرهایی که هر کدوم یه گوشهی بار انداخته بودن و در حال تیگه شام بودن پسر به گوشهی رفت و دیگ رو جلوی خودش گذاشت چند نفری که متوجه پسر بودن از اینکه که پسر دیگه خالی رو جلوی خودش گذاشته دلشون به حال اون سوخت و با لحن دل سوزانی بهش گفتن پسر جون اگه شام نداری بیا مهمون ما نداری باش. پسر با غرور سرشو بلند کرد و سینه جلو داد و گفت نه نه بهتر شماها بیاین مهمون من بشین هرچی میل دارین بگین تا براتون آماده کنم همه از این حرف پسر خندهشون گرفت پسر با قاطعیت گفت من در عرض یک چشبه هم زدن هر غذایی رو که بگین براتون آماده می کنم چند نفری؟ با ناباوری قدم جلو گذاشتن و توی دیگه خالی پسر سرک کشیدن. پسر هم بدون معطلی کفگیر رو به تهدیگ زد و گفت غذا حاضر شو! و یهو در عرض یه چشم هم زدن انواع اقسام غذاها به اندازه تعداد تمام مسافرها حاضر شد. همه از دیدن چون ای زبونشون بند اومد و با نو به کزاوی چور با چور مونده. در کارونسرا هم همها بالا گرفت و خبر به گوش کارونسرا دار رسید که دیگ و کفگیر یکی از مسافرها فلان خاصیگت رو داره. مرد کاروان سردار که آدم تمایی بود فکر کرد بهتره این دیگ و کفگیر جادویی رو از شنگ صاحبش در بیاره و بالاخره نیم شب که همه از جون پسر در خواب بودن آهسته آهسته بالای سر پسر رفت و دیگ و کفگیر رو برداشت و توی انبار پنهون کرد و به جای اون دیگ و کفگیری به همون شکل و اندازه گذاشت فردا صبح زود پسر از خواب بیدار شد و باربندیلش رو برداشت و به راه افتاد. دمدمای غروب بود که به شهرشون رسید و چند لحظه بعد هم پشت در خونشون زربهی به در زد. در رو باز کنین من اومدم پدر صدای پسرش رو شناخت و با خوشحالی در رو به روی اون باز کرد و بعد از احوال پرسی از پسرش پرسید: خب پسرم تو این مدت کجا بودی و چیکار کردی؟ پسر هم تمام ماجراها رو برای پدرش تعریف کرد و بعد با غرور گفت اینم دیگ و کفکیری که استاد یادگاری به من داده پدر و اونا رو جلوی پدرش گذاشت و بعد به پدرش گفت فردا همه اقوام رو دعوت کن تا خودی نشون بدیم پدر جان فردا همه اقوام سر سفره، به انتظار نهار نشسته بودن. پسر به گوشه ای رفت و کفگیر رو به ته زد و گفت قضا حاضر شد. ولی هیچ خبری از قضا نشد. پسر دوباره گفت قضا حاضر شد. و این بار باز هم خبری از قضا نشد که نشد. مهمونا که حوصلشون سر رفته بود قرلون کنان و با تمسخر خونه مرد خیاط رو ترک کردند مرد خیاط با اوقات تلخی رو کرد به پسرش و گفت دیدی دیدی این دیگ و کفگیر چجوری آب روی ما رو جروی برد پسر که متوجه شده بود کاروان سرادار دیگ و کفگیر رو عوض کرده موضوع رو برای پدرش تعریف کرد و هر دو به فکر فرو رفتن. اما ماجرای پسر دوم مرد خیاط پسر دوم هم رفت و شاگرد آسیابانی شد و حسابی به کسب و کارش دل بست بعد از مدتی که کار کرد دلش برای پدرش تنگ شد و رو کرد به مرد آسیابان و گفت ای آسیابان مهربون اگه اجازه بدی من به دیدن پدرم برم و آسیابون هم به رسم یاد بود اولاغی به پسر داد و بهش گفت پسر این یه اولاغ معمولی نیست فقط یادت باشه هیچ وقت اونو نزنی و چیزی هم بارش نکنی این اولاغ میتونه هر چقدر که بخوای به تو اشتفی بده پسر دست آسیابون رو بوسید و به طرف خونهشون راه افتاد و دست برغذا اون هم به همون کارونسرایی رفت که قبل از اون برادرش رفته بود پسر میخه طویلی علاق رو بالای سرش کوبید و شروع به بش کردن با مسافرها شد. وقت شام که شد پسر با گشاده روی رو کرد به مسافرها و گفت همه مهمون من این هرچی دلتون میخواد غذا بخورین، من پول همه اونا رو میدم. همه با تعجب به هم دیگه نگاه کردن. و پسر دستور داد انواع و اقسام غذاها رو برای مسافرها آماده کردند همه مشغول خوردن شدند. کاروان سردار که از ولخرجی پسر به حیرت افتاده بود، با زیرکی مراقب حرکات پسر شده و خودش گفت: نکنه کلکی توی کار باشه. آخه پسر این همه پول از کجا میخواد بیاره؟ عجیبه. موقع حساب کردن غذا که شد، پسر اولاغ رو به گوشهی برد و ازش خواست تا مقداری اشرفی برش بریسه. و در عرض چند لحظه مشتی اشرفی روی زمین ریخته شد. پسر اشرفی ها رو برداشت و به مرد کاروان داد. مرد کاروان که متوجه خاصیت عجیب و غریب اولاغ شده بود نصف شب که هم در خواب بودن اولاغ رو با اولاغی به همون شکل و رنگ عوض کرد. فردا صبح پسر بیخبر از ماجرا به طرف خونه پدرش برافتاد پدر از دیدن پسرش خوشحال شد و پسر بعد از احوال پرسی در مورد خاصیت جادوی اولاغ با پدرش صحبت کرد و قرار شد فردا تمام اقوام رو دعوت کنه و هنر رو به اونها نشون بده بردا صبح همه اقوام با ناباوری گرداگرد پسر و الاقش جمع شده بودند و پسر با هیجان به اولاغ گفت اشرفی بده اشرفی ولی اولاغ بی اعتنائی بود پسر دوباره گفت اشرفی بده با تو هم اشرفی ولی باز الاق از جاش تکون نخورد و نخورد و از اشرفی هم خبری نبود و نبود اقوام این بار هم قرولان کنان خونه مرد خیاط رو ترک کردند پسر متوجه حقهی مرد کارون سرادار شد و به فکر فرو رفت و اما براتون از ماجرای سومین پسر مرد خیاط بگم. اونم رفت و شاگرد خراتی شد و تمام ریزکاری های کار رو یاد گرفت و چون از کسانی که در رفت آمد بودن شنیده بود که کاروان سرادار با چه کلکی صاحب چه چیزهایی شده تصمیم گرفت به سراغ اون بره و حق برادرش رو از اون بگیره. پسر پیش استادش رفت و گفت استاد جان اگه اجازه بدیم من برای دیدن پدرم به شهرمون برم. استاد هم موافقت کرد و چون از پسر راضی بود به اون چماقی داد و گفت پسرچان این چماغ رو بگی هر جا کارت گره خورد و گرفتار شدی این چماغ به دادت میرسه فقط کافیه به اون بگی چماغ بکوب اون وقت چماغ حق مدعی تو رو کف دستش میذاره پسر خندهی کرد و زیر لب گفت <تصفح> این همون چیزیه که من بهش احتیاج دارم بعد از استادش تشکر کرد و سر و صورت اونو بوسید و خداحافظی کرد ساعتی بعد پسر توی کارون کارونسرا بود و در حال تعریف و تمجید کردن برای مسافرها که ای مردم ای مردم توی این دنیا چیزهای عجیب و غریبی پیدا میشه ولی از همه عجیبتر این چماغیه که من دارم ببینین اون خاصیت های زیادی داره که سر فرصت براتون تعریف میکنم کاروان سرادار که در میون مسافرا بود با شنیدن این حرف پسر زیر لب با خودش گفت به به چه شانسی <تصفيق> امشبم این چماخ جادویی رو صاحب میشم نصف های شب کاروان سرادار آروم و با احتیاط خودشو به بالای سر پسر رسون پسر که خودشو به خواب زده بود گوشه چشمی به اون انداخت و منتظر موند تا کارون سرادار دستش رو به طرف چماق دراز کنه کارون سرادار هم همین کار رو کرد و به محض اینکه دستش رو به طرف چماق دراز کرد پسر دستش رو گرفت و به چماق گفت چماق بکوب و چماق با تندی شروع کرد به سر و صورت مرد کارون سرادار کوبیدن حالا نکوب کی بکوب کاروان سرادار که نفسش زیر ضربه های چماغ بند اومده بود به سختی گفت غلط قلط که ادبای سرم دسته با قلط کرد و پسر گفت زودتر برو اون دیگه کفگیر و اون اولاغ رو بیار وگرنه این چماق کاروان سرادار با اتماس توی حرف پسر پرید و گفت چشم چشم از داره همه میارم چشم افتان و خیزان به طرف انبار کارون سرا رفت و دیگ و کفگیر و علاق رو آورد و به پسر داد پسر هم با خوشحالی و با دست پر به طرف خونشون برا افتاد ساعتی بعد پسر در کنار پدر و برادرانش بود و در حالی که چماغ رو توی دستش میچرخون گفت از برکت همین چماق بود که من دیگ و رو و علاق برادران پس گرفتم بعد رو کرد پدرش رو پرسید راستی پدر صدایی از بزغاله نمیاد اینجا نیست؟ پدر با شرمندگی سرش پایین انداخت و گفت من اونو به سزای عملش رسوندم بسر دروغگویی بود پسر با تعجب پرسید بزخاله کجا رفت پدر گفت من کتک مفصلی بهش دادم تا دیگه هیچ وقت دروغ نگه اونم فرار کرد و رفت پسرها شروع به خندیدن کردن و فردای اون روز جشن بزرگی برپا کردن و تمام اقوام رو دعوت کردن پسر بزرگتر دیگ و کفگیر رو گذاشت میون جمعیت و با غذاهای جور, و جور از اونا پذیرایی کرد پسر دوم هم اولاغشو آورد میون جمعیت و جیبهای اونا رو پر از اشرفی کرد و پدر و پسر کوچکتر هم با خوشحالی و قرور با اقوام بگو و بخند می کردن. خب به سه ما تموم شد ولی خدا کنه هیچ وقت شادیاتون تموم افسانه مرد خیات و بزغاله دروگو رو براتون نقل کردم. میبینین که در دنیای قصه ها و افسانهها ها هر کاری شدنیه. یه ها و افسانهها ها دنیای از جذابیت و سادگین و در همه دوره های عمر از کودکی تا پیری آدم رو به طرف خودشون میگشونن و از سرگزشت های تلخ و شیرین آدم های و برمون سخن میگن قصه ها و افسانهها ها در طول زندگی مردم دچار تحول و تغییرات تغیی اون چه که امروز نرد میشه مثل دیروز نیست این رو خار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور، پور اجرا مهران دوستی صدابردار مشید محمد ملکی و کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود